به نام خدا کتاب افسانه های مشرق زمین به ترجمه محمد عبادزاده کرمانی از انتشارات قصه جهان نما سوتی شده توسط کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده فاتیما افشار این میمون و تمسا توی جنگله بزرگ و پر از درخت آمازون میمون شیطون و بدجنس زندگی میکرد که اسمش مونیت بود مونیت اصلا دوست نداشت با بویات تمسایی که توی رودخونه زندگی میکرد دوست بشه. یه روز که مونیت بالای درختی نشسته بود چشمش به درخت موز اون طرف رودخونه افتاد. با خودش گفت وای چه درخت موزی چجوری از رودخونه رچم و به اون برسم و یه آلمه از اون موزای رسیده و خوشمزه بخورم. بعد نگاهی به چشمای بسته و بینی بزرگ تمسایی توی رودخونه کرد و گفت آها فهمیدم تمسایی داره استراحت میکنه باید برم پیشش بعد فوری با جستی خورش رو به زمین رسند و کنار رودخونه قدم زد و رسید به تمسا و صدا زد آهای دوست عزیز از خواب بیدار شد بوی امساه چشماشو باز کرد و گفت برای چی منو از خواب بیدار میکنی مونیت گفت دوست عزیزم امروز روز, روز تولد منه واسه همین دیگه تصمیم گرفتم و قول دادم که ایش کار از بد و, زشتی و نکنم و واسه تو یه دوست خوب و وفادار باشم بوی امساه بهش گفت خب منم ممنونم که اینقدر محبت داری. اما با خودش گفت این مونیت میمونه حتما یه قصد و نیتی داره که اینطوری با من صحبت میکنه. باید اونو امتحان کنم تا ببینم چی تو کلش میگذره. آخه من به کارها و حرفهای او اعتمادی ندارم. بعد بویا تمسای رو کرد به مونیتو بهش گفت خب مونیت عزیزم من ازت ممنونم حالا به من بگو ببینم چه کاری از دست من برمیاد تا برات انجام بدم مونیت میمونه جواب داد من نیمدم از تو چیزی بخوام فقط میخواستم بپرسم اون طرف رودخونه میری باید امسای جواب داد بله چطور؟ مونیت میمونه گفت میخواستم یه لطفی به من بکنی و منو اون ور رودخونه ببری بویا تمسا هم جواب داد که حتما این کارو میکنه بهش گفت بیا بیا پشت من سوار شد تا تو رو اون ور رودخونه ببرم مونیت میمون با جستی خودشو به پشت تمسا رسوند و تمسا هم به طرف ساحل رودخونه که اون طرف بود حرکت کرد اما یهو وسط رودخونه وایستادو به مونیت گفت خب دوست عزیزم حالا بگو ببینم واسه چی پشت من سوار شدی منظورت از رفتن به اون طرف رودخونه چیه؟ میمون که از این حرف تمسا حسابی ترسیده بود و وحشت کرده بود پرسید منظورت تو از این حرفا چیه؟ بوی تمساح جواب داد من قصد دارم تو رو ببرم اونوره رودخونه تا به همسرم بدم و اون رو از بیماری و مریضی نجات بدم آخه اون چند روز غذا نخورده و وقتی ازش پرسیدم چی دوستاری بخوری گفت فقط دل و جیگر یه میمون میتونه منو شفا بده و الانم همین نیت رو دارم که تو رو برای همسرم ببرم و دل و جگرتو بهش بدم تا بخوره مونیت میمونه گفت <تصفيق> ولی این کار واقعا وحشتناکه همسرتون ناراحت میشه این کارو نکنی آ بویت گفت مطمئن باش مونیت عزیزم اون از دل و جگر تو بیشتر خوشحال میشه مونیت جواب داد من از اینکه که همسرتو بیماره خیلی متاسفم ولی امروز نمیتونم به اون کمک کنم آخه امروز روز پاک کردن دل من بوده من که قبلا بهت گفتم امروز روز تولدمه صبح خیلی زودم من بلند شدم دل همو شستم و توی آفتاب گذاشتم تا خوش بشه الانم روی شاخه درخته تمسا اون رو به کنار رودخونه رسند و بهش گفت زود برو دل و جیگر کچیک تو واسه من وردار و بیار میمونم به سرعت خودش رو به بالای درخ رسند و از اونجا به تمسایه گفت برو برو به همسرت بگو که میمونه بدون دل میاد بویا که دهان بزرگ خودش باز کرده بود همونجوری که داشت میخندید بهش گفت <تصفيق> بلاخره یه روزی تو رو به چنگم میارم و پاداش و جزای این کارای زشت و فریب رو بهت میدم